در بخش قبلی به این قسمت از داستان رسیدیم که شاه داشاراسا پسرش راما رو با نیرنگ همسر سومش تبعید کرد و راما و سیتا همسرش با لاکشامانا برادرشون به جنگل رفتند برادران با مادرانشون ودا کردند و سوار عرابه سومانترا شدند اما قبل از رفتن راما به شهروندان گفت اهالی آیودهیا به باها احترام بگذارید، بیشتر از اونچه که به من احترام میگذاشتید. آنگاه سومانترا با شتاب تمام آنها را به رودخانه تاماسا برد و پس از آنگه نیایش های بامدادی را به جا آوردند، پیش رفتند تا به مرز کشور رسیدند و فورا به شرینگا و را در سواحل رود گنگ رفتند و با گوهاشا و خانواده دیدار کردند و شب را در اونجا موندند. روز بعد راما به سومانترا گفت اکنون به آیودهیا برگرد تا کایکی بدونه که من به جنگل رفتم و در قول پدرم تردید نکنه سپس با سومانترا و گوهاشاه ودا کرد و همراه سیتا و لاکشامانا از رودخانه گنگ گذشتند بعد از مدتی سفر شادمانه به مثب گنگ و یمونا رسیدند و در انجا شب شبهنگام به را دواجای زاهد برخوردند زاهد گفت از تبعید شما خبر دارم و منتظرتون بودم. حالا به شما میگم که باید به کوه چیتراکوتا سفر کنید. جای خوبیه با اصل شیرین، ریشه گیاهان و میوهها که باید با اونها اونجا زندگی کنید. آنها سفارش زاهد رو به کار بستند و به چیتراکوتا سفر کردند. آنجا لاکشامانا آلاچیقی دلباز ساخت که هر سه در اونجا موندگار شدند و به پرهیز و اعتکاف زاهدان پرداختند. در این هنگام سوماترا که به آیودهیا بازگشته بود و به حضور شاه رسیده بود، پیام کوتاه و فروتنانه ای از راما به او داد. داشاراسان نتونست جلوی اندوه خودش را بگیره و شروع به زاری کرد و گفت افسوس که اجازه دادم کاییکی این زن خطازاده منو به کرداری گناهکارانه بکشونه. چه نابکار بودم که باید با وزیرانم مشورت میکردم ولی نکردم چه احمق بودم که اجازه دادم به خاطر عشق به یک زن کارم به اینجا بکشه با شک و وزاری های از این گونه دل شاه که سال شکست و سرانجام عمرش به پایان آمد وزیران ایران چون دیدند که شاه مرده به سرگردگی واسیشتا با متانت به شور نشستند و به سفارش او قرار گذاشتند که بهاراتا را هرچه زودتر از راجاگری ها برگردونند تا مراسم خاک سپاری انجام بشه و آیودهیا بی پادشاه نمونه. بنابراین این پیک ها رح سپار شدند و به راجاگری ها رسیدند و این پیام رو به, به بهاراتا دادند. کوشش و وزیران با شما کار دارند لطفا هر چه زودتر با ما برگردید که وظیفه دشواری پیش رو دارید. و هارتا با شنیدن این سخنان به همراه شاتروگهانا با خیشاوندانش بدرود کرد و هر چند دلیل سفرش را های نگران کننده برش هجوم آورد. روز هفتم به آیودهه رسید اما چون پدرش رو در کاخ نیافت به جستجوی مادرش رفت. در این هنگام مادر تیرهبخت، تمامی تدبیری رو که اندیشیده بود به او گفت. سرخوش و شادمان چنان او را دچار نادانی کرده بود که به جواب پسرش چندان نیندیشید. پسرش گفت ای زن خیانت پادشاهی به چه کارم میاد وقتی که با یک پندار خطا از پدری که دوستش میداشتم و برادری مثل پدر بیبهره شدم. باسشتای همواره خردمند با صدای آرام گفت اندوه کافیه اکنون وقت اون رسیده که به وظایف خودت نسبت به پدرت بیاندیشی و مراسم خاکسپاریش رو انجام بدی. با این سخنان متین بهاراتا آرام شد و تمام آینهای مربوط به مردگان را به آورد و در روز دوازدهم مراسم نظر و پیشکش قربانی رو برای ارواح نیاکانش انجام داد. همین که این وظیفه رو انجام داد، وزیران مهیا شدند که او را بر تخت سلطنت بنشونند اما بهاراتا سر باز زد و گفت اجازه بدید نیروی بشه عرابی منو هم بیارید، چون در نظر دارم دنبال راما برم و هر کجا که باشه او رو به حق موروسیش برسونم. بیدرنگ همه اونها، وزیران، کاهنان و حتی سمادر، همه همگی به امید بازگشت راما هیجان زده برخواستند. هنگامی که به سرحدات جنگل داندکا رسیدند، به به لشگریانش دستور داد که وارد اون تاریکی ناخوشایند بشن و ناگاه، حیاهوی جانوران وحشت زده و فیلهای وحشی چنان بلند شد که صدای آن به محل سکونت راما رسید. لکشمانای تندخو فوراً بالای درختی رفت و از بالاترین شاخه تور پنج شده سربازان بهاراتا رو دید و به فریاد بلند گفت این بهاراتاست که برای پیچیدن به دست و پای ما اومده. اکنون که پادشاهی را به چنگ آورده میخواد با از این بردن ما جایگاه خودش را استوار کنه. اما رامای دانا به آرامی او را از این اندیشه‌های خشن باز داشت و گفت بهاراتا برادرانش رو دوست داره و من یقین دارم که او آمده تا از سر محبت با ما سه نفر دیدار کنه و هیچ هدف دیگه ای نداره جز اینکه از رفتار کایکی ناخشنوده میخواد پادشاهی را به من تقدیم کنه چیزی نگذشت که بهاراتا به آلاچیق ساخته از برگ درخت رسید و با اندوهی چنان بسیار که چگونه آن را به زبان آورد به راما خبر داد که پدرشان مرده وقتی را خبر را شنید از این ضربه تلخ از هوش رفت و چون به هوش آمد آرام با دیگران به رود گنگ رفت و به سهم خیش آئینهای مربوط به روان پادشاه درگذشته را به جا آورد پس آنگاه همه برگشتند و بهاراتا با سخنان جدی به برادرش اصرار کرد بزار من در اینجا جای تو را بگیرم و پوست گوزن زاهدان را بپوشم مادران بیوه تو نیاز به پشتیبانی تو دارند این درسته که پادشاهی را به من دادند اما آن را به تو پس میدم راما جواب داد به هاراتا اینطور نیست مادرت دو خواسته از پدر بزرگوار ما داشته سلطنت برای تو و تبعید برای من و پدر که پای بند عهد خیش بوده این خواسته را به جا آورده بنابراین من به فرمان پدرمان اینجا هستم آیا تو نیز از این دستور اطاعت میکنی؟ به آیادهی برگرد و به شهروندان هیچ با خوشنودی و درستی فرمان روایی کن. نیز در تشویق راما کوشید. آموزگار پدرت من بودم، همچنان که آموزگار تو نیز هستم. در پیروی از این رسم که بزرگترین پسر از خاندان شاه، پادشاه میشه، هیچ بر خطا نخواهی بود. راما پاسخ داد، هرچه که خواست پدرم بوده همون کار رو میکنم، ممکنه ماه رو بدون زیبایی ببینی و برف از هیمالیا پرواز کنه و یا موجهای اقیانوس ساحل رو ترک بگن اما من هرگز از قولی که به پدرم دادم دست نمیکشم هر چند بهاراتا خیلی اصرار کرد اما راما به او دستور داد که به این سودای خام نپردازه آنگاه بهاراتا که فهمید نمیتونه قصد و عظم برادرش رو تغییر بده یک جفت صندل طلا جلوی راما گذاشت و از او خواست که پایش رو در آن بکنه راما کاری رو که برادرش قاست کرد و هنگامی که پایش را از اون بیرون درآورد، بهاراتا در برابر آنها تعظیم کرد و گفت چون تا هنگامی بازگشت تو هر قطرم که طول بکشه باید انتظار کشید پس من بیرون از آیودهیا در راما زندگی خواهم کرد و در باب پادشاهی بگذار این صندل‌ها نمادهای اقتدار باشند اما اگر برنگشتی راما ای برادر من در سال چهاردهم میگمان من در تله مرد سوزان خواهم رفت راما قول داد که برگردد و به بهاراتا دستور داد تا از مادرشان موازبت کند. آنگاه با او و شات رو گهانه خود حافظی کرد. بهاراتا سندلها را روی سرش گذاشت و به آیدهی برگشت. سندلها را در کاخ نصب کرد و به نان راما رفت و از آنجا بر بوش سلطنت می کرد. اما از راما بشنوید. دیر چیتراکوتا اکنون پر از یاد و خاطره خیشاوندان و شهروندان غمگینش بود. بدین ترتیب با سیتا و لاکشمانا به دیر دانای بزرگ آتری سفر کرد و در آنجا او را همچون فرزندی پذیرفتند. همسر آتری نیز سیتا را با دل دلنوازترین خوشامدها و هدیه‌ای بسیار پذیرا شد و روز بعد پس از آنکه آتری راه را به آنها نشان داد، به اعماق جنگل داندکار رفتند. ناپدید شدن سیتا هنگامی که راما و سیتا و لاکشامانا وارد جنگل داندکا شدند، خیلی زود به ای رسیدند که مرتازان با نهایت محبت آنها را پذیرا شدند و از راما درخواست کردند آنها را از دیوهایی که در آن جنگل اوتراق کرده بودند، حفظ کند. انگار مقدر بود که خیلی زود با یکی از آنها روبرو شوند. زیرا روز بعد، همین که به راه افتادند، غولی آدمخار سر راهشان ثبت شد و به تندی سیتا را از کنار شوهرش ربود. و دو برادر را به مرگ تهدید کرد و گفت اول به من بگید کی هستید. و هنگامی که برادران نامهایشان را به او گفتند، ادامه داد: بدانید که من ویرادها هستم و از قدرتی برخوردارم که به رحما به من بخشیده و هیچ بوجود میرائی نمیتونه منو با اسلحه بکشه. سپس جنگی بین آنها در گرفت که بیهوده به درازا کشید. زیرا قدرت غول چنان بود که برادرها را رو روی شانههایش گذاشت و با خود به اعماق جنگل برد. در حالی که سیتا گریان به دنبالشان میدوید. سرانجام راما به برکت تلاش قدرتمندانش یک دست قول را و لاکشمانا دست دیگرش را شکست همین که ویرادها از پادر افتاد راما پایش را برگردن او گذاشت و او را بیهوش کرد آنگاه بیدرنگ چاله ای کندند تا لاشه قول را در آن بیاندازند و همین که این کارا کردند صدای از لاشه بیرون آمد من در صورت و کالبود حقیقی هم تومبروی گاندهاروا هستم. مرا نفرین کردند که تا روزی که به دست راما کشته میشوم به همین شکل ویرادها بمانم. اکنون یک فرسنگ و نیم از اینجا جلوتر بروید تا به دیر شرابهانگا برسید. روح تومبرو با گفتن این سخنان به آسمان بالا رفت و برادران لاشه را به گودال انداختند. چون به دیر شرابهانگا رسیدند، او با عدب بسیار آنها را پذیرفت و در حالی که زاهدهای بیشماری دورش را گرفته بودند، همین که رسیدند، این دیرا سرکرده خدایان که به میهمانی شرابهانگا آمده بود، در اش در آسمان ها ناپدید شد. دانای بزرگیوار به راما گفت داشتم رهلت می‌کردم و به جهان به می رفتم. اما دلم می‌خواست اول تو برسی و به تو سلام کنم، اکنون راحت را رو ادامه بده و از رودخانه مقدس بگذر تا به سوتیک دانا برسی. آنگاه مراسم قربانی را برگزار کرد و همچنان که مراسم پیش می رفت از تل مرد سوزان بالا رفت و در این موقع از میان شعله جوانی زیبارو برخاست و به عالم بالا آسمان برحمه بالا می رفت. دوباره پارسایان در برابر حمله‌های راکشاساها از راما درخواست کمک کردند و راما قول داد که هرجا به این دیوها برخورد با قدرت بازوها با آنها پیکار کند آنگاه سه مسافر سرگردان خداحافظی کردند و با دنبال کردن ساحل رودخانه راهسپاره دیر سوتیکشنا شدند سوتیکشنا چشم بر راه آنها بود زیرا این دیوا از رسیدن راما او را خبردار کرده بود سوتیکشنا به مسافران خسته گفت خوش آمدید مدتی در اینجا استراحت کنید و نیرویتان را برای نبردهایتان بر ضد دیوها جمع کنید. اما زنهار از قزالحایی که در میان درختان جنگل به بازی و جست‌وخیز مشغولند، بر کنار باشید از آنها زیرا آنها جز بدبختی چیزی به بار نمیآورند. راما یک شب دیگر را پیش از آن که دوباره هنگام طلوع روز بعد، راه شوند، با سیتا و لکشمانا گذراند و روز بعد همچنان که پیش می‌رفتند، سیتا رو به شاهرش کرد و گفت: این درسته که دیف ها به این پارسایان هجوم میارن و اونا جسد های کشته شدگانشون رو به ما نشون دادن و این هم درسته که تو و لکشامانا قوت بازوتون رو در گرو این هدف نهادید با این همه میخوام به یادت بیارم که تو داری رسم نظر و نیاز زاهدانه رو به جا میاری پس کمان مرگبار کاست کست در میان مای املک فقیرانه یک پارسا چه میکنه؟ راما با شنیدن این سخنان پاسخ داد سیتای عزیز، اون چه میگی درسته، اما من به این ظاهدهایی که از من تمنا کردن، قول دادم و ترجیح میدم، از جانم بگذرم، اما از قول و عدم به برحمنان نگذرم. باری، راما با همسر و برادرش ده سال دیگر رو در دیرهای سواحل پنچاپاسارا به سر بردند. با گذشت ده سال، راما که پیوسته اندیشناک قولی بود که برای کمک به پارسایان در برابر حمله های راکشاساها داده بود، دوباره یک روز به دیدن سوتیکشانا رفت. سوتیکشانا به او گفت که در پی آگاستیا دانای پرحیبت بره. همین که راما و همرزمانش وارد دیر آگاستیا شدند، حکیم قهرمان به همرزم خود راما از سمیم قلب درود گفت و او را نشستن دعوت کرد و این سخنان را بر زبان آورد: های تو تو را دلپذیرترین ها کرده است. این کمان قدرتمند را که صنعت خدایان آسمانی و جواهر نشان است، از من بگیر با این کمان پیروزی از آن تو خواهد بود و به همان گونه که این دیرا وریترای افریت را با آزارخش خیش بکشت در دو فرسنگی اینجا نزدیک رودخانه گوداواری مکانی دلگشاه است که از تمام نعمت طبیعت بهره است و به پنجاواتی شهرت دارد تو و برادرت در آنجا سکونت بگذینید و فرمان پدر را اجرا کنید راما و همراهانش همچنان که سفر می با لاشخوری غول پیکر روبرو شدند که قدرتی هولناک داشت. پرنده به راما گفت که او را به خوبی می شناسه چون داشاراسا دوستش بوده و ادامه داد اکنون بدان ای راما که من جاتایو هستم. پس از اینکه با هم سلام و احوالپرسی پرسی کردند راهشان را به سمت پنچواتی ادامه دادند و در آنجا در کنار سواحل گداواری لاکشمان فورا مسکن دلپذیری برای برادرش و سیتا ساخت. یک روز همچنان که راما و سیتا با خوشحالی در آن مکان دلپذیر زندگی می راکشاسی شورپاناکای ماده دیو که در آن اطراف می‌گشت سر رسید. هنگامی که ماده راکشاسای زشت با ناخونهایی به بلندی چنگک کاهفشان چشمش به چهره نیلوفرین راما افتاد، تیر عشق او بر قلبش فرود آمد و گفت چرا تو با همسرت باید به مناطقی بیایید که تنها راکشاساها در اون زندگی می کنند؟ چرا با اون که همچون ریاضت پیشگان لباس پوشیدی تیر و کمان به خودت داری؟ نام من شورپاناک هاست من یه راکشاسی هستم و به هر شکلی که بخوام میتونم در بیام این زن کجا شایسته توه؟ اگه همسر من بشی اونو خواهم خورد با آنگاه با هم شاد و بدون مزاحم این سو و انسو خواهیم رفت. راما پاسخی نداد جز این این شوم بدنهاد رو به برادرش واگذاشت. لاکشمانا که خلق تون تری داشت خواهش های راکشاسا را با بریدن گوش ها و بینیش پاسخ داد و بدین دینسان سیتا را از سرنوشتی وحشتبار نجات داد زیرا شورپاناکها ها آماده حمله به او بود. شورپاناک ها رنجیده و گریان در میان درختان جنگل به جز برادرش کهارای افریت دوید. وقتی کهارا علت ناراحتی او را دریافت دسته ای از چهارده راکشاسا همراه شورپاناک ها که تشنه سرکشیدن خون سیتا و لاکشمانا بودند فرستاد. شورپاناک ها برای این فرستاد که راه را به اونها نشون بده. با این همه وقتی دیوها به دیر راما رسیدند، در برابر چنان پهلوان توانایی ضعیف و حقیر به نظر می رسیدند و هر تن، پیش از آنکه به بیشهی برسند که مسکن راما درون بود، با تیرهای او که در قلبشون فرو رفت، در میان گیاهان جنگل روی هم افتادند. بار دیگر شورپناکان نزد برادرش شتافت و به او از شکست راکشاسه خبر داد، و تقاضا کرد که تلاش بیشتری برای گرفتن انتقام او از خودش نشون بده کهارا به راکشاسای همغطارش گفت دوشانا بیا تا تمام نیرومون یعنی هر چهارده هزار نفر رو بسیج کنیم بنابراین به ارابش سوار شد و با لشکری گران از دیوها از جاناستانا بیرون آمد هرچند نشانه های شومی آسمان رو پر کرد اما دیوهای کهارا به سوی دیر راما پیش رفتند برای تماشای نبرد دهشتناکی که در حال رخ دادن بود خدایان و ریشیها دانایان آسمانی از آسمان مینگریستند و به نتیجه جنگ فکر می کردند همین که کهها به دیر نزدیک شد راما را دید که با قیافه خشمگین کمان قدرتمند عظیمش را آماده کرده هر چند دیوان از شدت خشم بارانی از تیر بر راما فرود باریدند به علت هیجان درست به هدف نمیزدند. اما راما بی خطا خیلی از اونا رو کشت و بقیه گریختند. او تک و تنها پیروزمندان ایستاد، زیرا برادرش و سیتا رو در پناه غاری جای داده بود. بعد دوشانا دوباره لشگر راکشاساها رو گرده هم آورد و بار دیگه اونا در حالی که مثل حیوانات پا بر زمین می از میان درختان جنگل هجوم آوردند. راما جنگفزار گاندهاروار رو در برابر اونا به کار برد و هزاران راکشاسا ها رو کشت. دوشانا خود از عرابش به راما حمله کرد. اما یکی از تیرهای راما از میان عرابه گذشت و دیو رو در جا کشت. اندکی بعد همه راکشاساها اونجا افتاده بودند مگر کهارا و تریشیراس. تریشیراس به میان مرک پرید و به سرنوشت مرگبار دوشانا دچار شد. پس از اون کهارای قدرتمند تیرهای خودش را به سمت راما پرواز داد چنانکه که کمان راما از دستش بیرون پرید و سپرش پاره پاره شد و افتاد راما شتابان به سمت جایی دوید که کمان آغاستیا را گذاشته بود و همین که تیرهاش را تندتر از شهاب فروبارید عربه کهارا از کار افتاد و دست چپ و کمانش مورد اصابت تیر قرار گرفت کهارا با خشمی وحشتناک گرزش را به سمت راما رها کرد اما پیش از آنکه گرز به او برسه، تیری که به خوبی هدفگیری کرده بود، در میانه هوا جلوی پرواز اونو گرفت. آنگاه که هارا یک درخت شالای بزرگ رو ریشکن کرد و پرتاب کرد. راما این سلاح را نیز با رگبار تیرهاش دفت کرد و سرانجام همین که قدرت راکشاساها زوال گرفت، راما او رو از پا درآورد. بنابراین قلم روی پنهان جاناستانا به تمامی نابود شد، و ریشیها در آسمان پدیدار شدند و راما را به خاطر انجام اعمال با شکوه سقوطند. در همین میان ها که شاهد اعمال درخشان و تکان راما بود، به جزیره لانکا شتافت که در آنجا برادرش راوانا قدرتی برتر داشت. آنجا در لانکا راوانا با وزرایش در ایوان قصرش به شور نشسته بودند که ناگهان ها به وسط جمع آنها پرید، او با شتاب برای روانا تعریف کرد که چگونه راما قلم دیوان را نابود کرده و جاناستانا از اهالیش خالی شده. او نالان و گریان گفت که چگونه خودش را هم مثل برادر راما مسله کرده و سرانجام درباره زیبایی بینظیر و شگفتاور سیتا و اینکه هرکس هر کس او را تصاحب کنه پادشاهی تمامی زمین رو به چنگ میاره سخن گفت. روانا فورا عرابش را حاضر کرد و به ساحل رودخانه شتافت سپس با گذشتن از توند آب ماریچا که راما به دریا افکنده بود و در آن سوی ساحل اقامت داشت ملاقات کرد. هنگامی که راوانا سرنوشت وحشتناک رفقای دیو خودش رو که به دست راما گرفتار شده بودند برای ماریچا تعریف کرد و گفت که در نظر داره راما رو بکشه، و سیتا را بدوزد، ماریچا بهش چنین گفت: تو نمیتونی راما رو بشناسی، زیرا او شخصیتی والا و نجیب داره. و تو پست و فرومایی و نقشه ها ترگز به جایی نمیرسه وزیران و جاسوسانت به چه درد میخورن که نمیدونستی در جاناستانا چه میگذره آیا کاری احمقانه تر از این هست که آدم زن دیگه ای بگیره تو میگی که راما ها رو مصله کرده و برادرتو دوشانا و چهارده هزار سا رو بدون دلیل کشته اما من فکر میکنم که اونا خطایی کردن قدرت و شکوه راما رو میشناسم با اون نجنگ راوانا پاسخ داد نماری چا من در انجام نقشم مسمم هستم حتی تمام خدایان هم نمیتونن منو از این تصمیم منصرف کنن تو مقام و جایگاه خودتو نمیشناسی که اینطور با من صحبت میکنی اکنون به تو دستور میدم که به من کمک کنی و این کاری که بهت میگم انجام بدی تو که میتونی خودتو به هر شکلی در بیاری خودتو به صورت آهوی طلایی در بیار و در مرغزار دیر راما بخرام جایی که سیتا تو رو ببینه بعد سیتا میخواد که تو رو براش بگیرن و هنگامی که تو اینو شنیدی فرار کن و دور شو و فریاد بزن وای بر لاکشامانا افسوس بر سیتا این کار رو انجام بده و نافرمانی نکن وگرنه تو رو میکشم سپس در عرابه راوانا شتابان به سمت پنچاواتی شتافتند و ماریچا دستورهای راوانا رو انجام داد هنگامی که سیتا آهوی تلائی زیبا رو دید که در سایه گیاهان مرغزار دیر میچره، همسرش و لاکشامانا را صدا زد اما اونا با دیدن این جانور دوچار شک و تردید شدند لاکشامانا رو به برادرش کرد و گفت به نظر من عجیب نیست که این همون دیوی باشه که یه بار تا اونو پرت کردی اما نکشتی همون ماریچاست که حالا اومده تا بازی پلیدی با ما بکنه اما سیتا چون دلبسته زیبایی حیوان شده بود که سرانجام حرف خودش رو پیش برد و راما تسلیم خواهش‌های او شد و به لاکشمانا سفارش کرد و گفت همینجا بمون در مدتی که من در تعقیب این آهو هستم یک لحظه هم از کنار سیتا تکن نخور. بعد روی زمین دایره ای رو به سیتا کشید و دور سیتا خط کشید و شمشیر و کمانش رو برداشت و به دنبال آهو راهه پار شد. ماریچا که هنوز به شکل آهو بود، راما رو حتی بسیار دورتر از دیر کشند. سرانجام راما تصمیم گرفت حیوان رو بکشه. ماریچا وقتی با پیکانی مریبار نقش زمین شد فریاد زد وای بر سیتا دریغ از لاکشامانا هنگامی که سیتا آن فریاد اندوهبار بار رو شنید که به نظر میامد صدای شوهرش باشه بیدرنگ از لاکشامانا تقاضا کرد که بره ببینه چه اتفاقی افتاده اما لاکشامانا که دل به فرمان برادرش داشت از رفتن امتنا کرد سرانجام سیتا با اشک و ناراحتی بارها و بارها از او درخواست کرد که ترکش بگه و ببینه چه بلایی سر شوهرش اومده لکشمنو هنوز چندان دور نرفته بود که زاهدی سرگردان جلوی سیتا ظاهر شد و با سخنانی موزیانه از او پرسید تو کیستی؟ کسی به زیبایی تو با لباس طلا و نقره و سرگردان اینجا در جنگل چه میکنه؟ سیتا به او گفت که کیست و چگونه برای زندگی کردن با شوهرش و برادر او به اینجا اومده. آنگاه پاش را از دایره‌ای که بر زمین کشیده شده بود بیرون گذاشت و رفت برای درویش آواره صدقه بیاره. که ناگهان مرد گفت بدون که من همان راوانای دهگردن مشهور و فرمانروای جزیره لانکا هستم همسر کسی باش که در تمام سه جهان مشهوره همسر من شو این مرد فانی رو رها کن راوانا با این سخنان به شکل واقعی درآمد و موی سیتا رو در چنگ گرفت و او رو به عرابه خودش برد هرچند سیتا که در چنگ آلوده و زمخت پادشاه راکشاساها ها گرفتار شده بود بر بدبختی خیش نالوزاری میکرد اما این کار سمری نداشت سی تا هنگامی که جاتایو را دید خطا به او فریاد زد که سرنوشتش را برای راما بگه لاشخوره بزرگمنش فرود اومد جلوی راه راوانا را گرفت و او را به مبارزه خوند اما افسوس که خدمت دوستانی جاتایو و دلیری بسیارش هیچ حاصلی نداشت زیرا راوانا با درندگی فورا شمشیر کشید و بالها و پاهای او را قطع کرد. جاتایوی بیچاره در مانده و تیر بخت غرق در خون بر زمین افتاد در حالی که گرد و غبار عرابه راوانا در هم میپیچید و دور و دورتر میشد شد کتاب میگرفت، سی تا گلها و هایش رو بر زمین می افکند و هنگامی که از فراز کوهی بلند میگذشتند تا به آسمان برند، پنج میمون قوی رو دید که روی قله چندک زده بودند. او شال طلایی و برخی از زیورهاش رو بر زمین افکند، به این امید که شاید شوهرش با دیدن اونا از موضوع خبردار بشه. اونا خیلی زود به جزیره لانکا رسیدند و راوانا سیتا رو به کاخ خودش برد. با این همه هرچه کرد که بر سیتا چیره بشه و او رو به همسری خودش در بیاره، او با قلبی چون سنگ در برابر تمناهاش مقاومت کرد و در حالی که شرم بر چهرش پرده کشیده بود، سرانجام دیو خشمی این قسم یاد کرد که اگر او یه دوازده ماه آینده تصمیم خودش رو تغییر نده، او رو زنده زنده میخوره. و با این سخنان او رو در بیش زاری از آشوکا که راکشاساها از اون نگهبانی گذاشت. تا در اونجا تنها زندگی کنه اما خدایان و آسمان به فرجام آمدند زیرا میدانستند که شکست راوانا خیلی زود فرا میرسه. هنگامی که راما ماریچا رو به شکل آهوی طلایی بود کشت شتابان به دیر برگشت و همینطور که می‌دوید در راه به لاکشمانا برادرش برخورد کرد راما خشمین از دست برادرش که با سیتا نموده بود به سرعت به جایی شتافت که سیتا را گذاشته بود اما آلاچیق خالی بود همچنین در تمامی غارها، درزها و پناهگاه هایی که رامای دلشکسته از عشق و لاکشامانا با هم جستجو کردند، هیچ کس نبود. آنگاه وقتی از دیر بسیار دورتر رفتند، ناگهان بینوا بینوارو در آستانی مرگ پیدا کردند. پرندی رنجور و بالو پرشکسته گفت افسوس رامای عزیز، دیو دیوانه روانا، سیتایی را رو که به دنبالش میگردی، و نیز زندگی منو با خودش برد، تا اونجا که میتونستم جنگیدم، اما پس از اینکه منو در این وضعیت درمانده رها کرد، ارابش رو به سوی جنوب راند، افسوس راما، عمر من هم اکنون به پایان میرسه، در برابر دیدگانم، درختانی با برگها و شاخه های تلا میبینم، رامای بزرگ، نومید نباش. جاتایو شریفترین سرکرده پرندگان با این سخنان جان از بیرون رفت. راما برای از دست دادن دوستین اینچنین واقعی به تلخی زاری کرد. بانگاه توده ای هیزام برای مراسم مرده سوزان آماده کرد و پیکر جاتایو را همراه با آینهای مربوط همانطور سوزند که پیکر بستگان خیش رو می سوزند. سپس برادران راما و لاکشامانا به سمت جنوب پیش رفتند تا به جنگل بزرگ کرانچا رسیدند که پر از درختان تنومند و عظیم و حیوانات وحشی بود ناگهان صدای قرش وحشتناکی به گوش آمد و جانوری قوی در بوتهزار نمایان شد او کاباندهای های عظیم یک های بی سر با دست های گشوده بسیار بود اژدها چنان غول پیکر بود که لاکشمانو خود را باخت و راما هم فکر کرد که آخرین لحظه زندگیش فرا رسیده. اژدها برای نابود کردن اونا نزدیک شد. اونا در اوج وحشت جرأت پیدا کردند و شمشیرشون رو از نیام برآوردند و دستهای اون حیولا رو بریدند. ها از پای در اومد. از اونا پرسید که کیستند و وقتی پاسخ دادند، او شروع به نقل سرگذشت خودش کرد و گفت: من کابانت ها هستم که به این شکل در اومدم. تا همه ریشی ها دانایان بزرگ رو بترسونم اما استهولا ریشی منو نفرین کرد که تا وقتی که راما و دست هام رو میبورن به همین صورت باقی بمونم من پسر دانو هستم که از برکت عمر دراز برخوردار شده و همین منو واداشت که با این دیرا خدای بزرگ ستیزه کنم اما این دیرا سر منو برید و سوگند خورد که تا راما منو نجات نداده به همین شکل باقی بمونم اکنون از تو خواهش میکنم که منو در گودالی بسوزونی. منم به تو میگم که چگونه به سیتا دسترسی پیدا کنی. همین که شعله ها بدن هیولا رو نوازش کردند، پیکری با تراوت از میان آتش پدیدار شد که با آنها چنین گفت. اکنون هرچه زودتر برید و سوگریوای ارجمند را پیدا کنید. او کنار دریاچه پامپا به سر میبره، برید و با او همدست بشید زیرا والین پسر این دیرا فرمانروایی بر تایفه ها رو از چنگ او به در آورده یاری او را طلب کنید و او سپاهش خیلی زود سیتا را برای شما پیدا خواهند کرد دو برادر که به این ترتیب دل و جرأت یافته بودند به سرعت در راهی که کاباند ها نشان داده بودند پیش رفتند و چیزی نگذشت که به پامپا رسیدند که زیبایی آنجا با سوسنهای آبزی و نیلوفرهای رنگارنگش اندوه راما را تازه کرد.